بله این حضوری زهرم نی آمدن دیگه شروع وقتم دیگه زهرم گذشته مقداری و بعد بله بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین باب مالک حقوق مالکیت فکری دیدیت دی تعاریفی شده بود که بیان گشت و به صورت مختصر تا او بیان شد و در چند دهی که در کشور ما این نور بحث قرار گرفته فوقه ها و حقوق به بحث او پرداختند و امدتاً در اسلامی نظریات مخالف یک دیگری ارائه شده است بعضی ها موافقند و برای مالکیت‌های فکری حقی قائلند و مالکیت قائلند و تراوش های فکری و احتراعات و آفرینش های فکری و ذهنی رو مال حساب می به ملک در میآید و به دنبال او حقی هم به او تعلق می گیرند. اما در مقابل حدقی مخالفند و ادله ملکیت رو شامل محصولات فکری و حقوق فکری و معنوی نمی دانند و هر کدام هم برای خودشون ادله اقامه کردند که به طور اختصار قبلاً شد. تقریبا باب مخالفت خاطره با شد اون وافق با او در حاله بعد از اول نظر مخالفین رو طمع به نقد و ارزیابی معلوم مبانیت نظر کسانی که وافق با مبانیت اونها رو ارائه کنیم و به نقد و تحلیل اونها بپردازیم اما مخالفین برای نفی مالکیت فکری یا معنوی آمده ادله متعددی رو ارائه کردهاند. یعنی از مجموعه کلام اونها استفاده می شود که اینها به ادله ششگانی تمسک کردهاند. به واسطه این ادله برای مالکیت فکری شنی قائل نیستند و حقوقی رو برای او ثابت نمی کنن. اولین دلیلی که مخالفین اقامه کرده اند این است که این مالکیت معنوی و فکری با قاعده سلطه مخالف است. تعبیر درست سلطه است نه تسلیت که بعضی الفاظشون به کار بردن چون تسلیت یعنی به دیگری سلطه دادن دیگری را بر چیزی یا کاری مسلط کردند. در حالی که قاعده معروف به قاعده سلطه معنایش این است که انسان نسبت به آن چیزی که مایملک اونهاست و در ملک اونها واقع می شود حق دارن که ارادی خود را اعمال بکنند چرا که هر کسی که مالک چیزی است سلطه بر اون مال و اون شی را هم داراست این قاعده قاعده سلطه نام دارد خب در رابطه با قاعده سلطه تمسک جست شده است به یک روایت نبوی که رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اناسو مسلطون علا اموالهم یا طبق روایت دیگری با بیان دیگر و نقل دیگر فرمودن اناسو مسلطون علی اموالهم و انفسهم مردم نسبت به اموالشون نسبت به اموال و جانهایشان سلطه دارند این روایت به حسب سند اگر بررسی رجالی بخواهیم بکنیم روایتی است نبوی و سند ندارد و در کتب اهل سنت آمده است آنچه چه که در پیش شیعه معروف است این است که امامیه به روایات نبدی عمل نمی کنند. چرا؟ چون هر روایتی که به غیر واسطه امامیه به واسطه غیر امامیه شده از پیغمبر پیدا نشده که سند معتبری داشته باشد که افراد سند که در سلسله سند واقع شده باشند افراد موسق یا عادلی باشند لذا اون روایات نبوی که از طریق اهل بیت اسمت و تهارت یا کسانی که امامیه هستند و با سند درست به ما به اونها عمل میکنید لذا این تعبیر یه مقدار بول زننده است که چرا شیعه به روایات نبوی عمل نمی کند اگر مقام پیغمبر کمتر از ائمه است نه اینطور نیست یعنی روایتی پیدا نکردیم که از غیر طریق شیعه آمده باشد و به پیغمبر برسد چون اهل سنت ائمه ما رو که قبول ندارند و اونها رو مورد قبول قرار نمی که خودش بحث کلامی جداگانه دارد که چرا هر که ائمه ولو به عنوان خلفای پیغمبر نباشند و اغلب عنوان راوی و محدثی هستند چه محدث و راوی معتبرتر از امه اهل بیت اسمت و تهارت؟ به هر جهت چون در طریق این روایات نبوی که از غیر نقل شده یک روایتی که سندش همه افرادش معتبر باشن پیدا نشده این شعاری شده است برای شیعه که شیعه به روایات نبوی عمل نمی کند یعنی چون سند سهید ندارد اما روایاتی که با سند معتبر باشند که از طریق اهل بیت وارد شده اند اینها مورد عملن مثل بقیه روایاتی که به معصومی میرسند این روایت انناس مسلطونه را امواله و هم روایتی در خورو نیست و رد هم به این روایت عمل کرده هم یعنی این روایت شهرت عملیگی دارد تو دارید شهرت در نقل روایت هست یا در فتواست یا در عمل به یه روایت است اگر روایتی در کتب فراوانی از کتب متون و اصیل روایی موجود باشه و فراوان نقل شده باشد میگن این روایت مشهور است، شهرت روایی دارد. اگر نه، روایتی داشتیم که مشهور علما، علمای از قریبه به عصر معصوم، فتاواشون مطابق با این روایت است. اگر چه که تمسک که به این روایت هم نکردن ولی فتاواشون با مضمون روایت مطابق باشد میگن این شهرت شهرت فتاوایی است این فتوا مشهور بین علماست اهم از اینکه که روایت این مطابق با این فتوا موجود باشد یا نه اهم از اینکه کسی به اون روایات برای این فتوا تمسک کرده باشد یا نه شهرت عملی این است که مشهور علما تمسک به یک روایت خاصی کردهاند و بر اساس او فتوا داده‌اند یعنی گفتن سند فتوای ما این روایت است بر اساس این روایت ما این چنین فتوا می دهیم اینو میگن شهرت عملیه در علم اصول بحثی است و اون اینکه آیا اگر روایتی از نظر سند معتبر نبود شهرت عملیه و همچنین در باب شهرت فتواییه آیا شهرت عملیه جابر ضعف می میتواند باشد یا نه البته در بحث دلالت هم همین اختلاف هست که آیا شهرت فتواییه یا عملیه جابر ضعف دلالت می میتواند باشد یا نه یعنی شهرت فتوائیه در حکم مبین باشد نسبت به اجمالی که در دلالت یک روایتی هست حالا ما بحث سندی رو میخوایم مشغول بشیم آیا شهرت عملیه جابر ضعف سند میشود به طور که بگیم این سند کنه صحیح است و معتبر به ددالتش فقط باید به در علم اصول این مسئله مورد بحث واقع شده و بین علما اختلاف است بعضیها شهرت فتواییه رو و شهرت عملیه رو جابر ضعف سند میدانند بعضیها نمیدانند لذا میشود یه بحث مبنایی ما اگر شهرت عملیه رو جابر ضعف سند ندانستیم یه به این روایتی که نبوی است و مدرک قاعده سلطه حساب می شود تمسک نمی شود بکنیم اما اگر چرا مبنا این شد که شهرت فتواییه جابر ضعف سند است و شهرت عملیه اونگاه این روایت سندش می شود معتبر باید بحث دلالیش انجام بشود آنچه که خود ما در اصول به اون نظر دادیم این بود که نه شهرت فتواییه به تنهایی یا شهرت عملیه به تنهایی جابر ضعف سند نیست و اینها جز ون چیز دیگری نمیآورند و اصل در ظنون عدم حجیت است و ما بر چنین زنی دلیلی بر حجیتش نداریم. اما حالا اونایی که نه مبناشون این است که شهرت عملیه جابر زعفی سنده است خب روایت رو معتبر می دانند می بینید مقنوع شیخ انصاری و قدمای ما و متأخرین و معاصرین بسیار به این قاعده تمسک می کنند و در ضمن استعدالهاشون این قاعده رو به کار می برند حتی این روایت هم نام می برند و نقل می کنند خب حالا ما فرض را بر این میگیریم که قاعده سلطه بر اساس این روایت که سندش معتبر است و دلالتش هم واضحه است، یک قاعده فقهی است. دلالت این روایت هم واضح است. مردم نسبت به اموالشان، اون چیزی که مال اینها حساب میشود شود و همچنین نسبت به جانشان یعنی تصرفاتی که دارند و نسبت به نفس خودشون میتونن انجام بدن بخوابند راه بروند بیکار باشند فعالیت فکری کنند فعالیت بدنی کنند نفسشون رو در هر راهی که خواستن به کار بگیرند سلطه دارند یعنی مفهوم عرفیش اینه که آزادند جایز است الا ما خرج به دلیل مگر جایی که شارع نفی کرده مثلا شاور گفت مال تو بی بیرون بریزی اسراف به خودت ضربه نمیتوانی بزنی به نفست به جسمت حق نداری به گونه از نفس یا مالت استفاده کنی که موجب فساد برای خودت یا ضرر برای دیگران بشه البته این موارد خوب استثناست است اما قاعده اولی این است که هر نسبت به مال خودش و جان خودش هر نوع تصرفی را که بخواهد میتواند انجام بدهد یعنی آزاد است، یعنی شرعا مباه است و او چنین اختیاری رو دارد اینو میگن قاعده سلطه کو. بعضی ها معتقدند که مالکیت فکری با قاعده سلطه‌ای که میگوید مردم مالک اموال خودشون هستند و سلطه دارند بر مالشون و هر نوع تصرفی می توانند بکنن منافع دارن چطور شخصی کتابی نوشته یک پروژه علمی داشته اختراع کرده درص این مقاله‌ای خب این میفروشد به دیگران مردم میان این کتابو میخرند آیا یا مردم میتوانند از این کتاب تقلید بکنند بر اساس او عمل بکنند یا نه باید برن اجازه بگیرن صاحب کتاب و نویسنده و مؤلف و مصنف و مترجم یا بخوان اون رو نشر بدن منافعی داره کسی که کتاب نشر میده خب منافعی خیلی از کسبهای دیگه سود فراوان توشه خب کتاب رو دیگری نوشته راست من رفتم از بازار یه نسخهشو خریدم اما می توانم خودم اینو منتشرش کنم در تیراژ فراوان و سود فراوانی ببرم آیا جایز است که من بدون اجازه این کار را بکنم از صاحب کتاب اذنی و اجازه ای نگیرم و خودم اقدام به چاپش بکنم یا از مطالب کتاب اقتباس بکنم در کتاب خودم در سخنرانیم بدون اینکه از اون آقای اجازه گرفته باشم یا در مقام عمل به دستوراتی که در این کتاب داده شده عمل کنم مثلا کتاب پزشکی، خب از بازار من یه کتاب خریدم فرض کنید ده هزار توی کتاب دادم خب دستورات فراوانی در این کتاب است که اگر میخواید مریض نشید این کارو بکنی. اگر مریض شدید، میخواید سالم بشید، این دارو رو مصرف بکنید. من برم عمل بکنم. در حالی که اگر بیشه دکتر میخواستم بروم، چند ست هزینه داشت. یا مخارج فراوانتری دیگری به او پیش می آمد اما نه حالا تو خونه نشستم، از کتاب این آقا استفاده میکنم، پولم به کسی نمیخوام پرداخت بکنم. به دستورات کتاب عمل میکنم و, و خوب میشم. آیا برای عمل کردن به دستورات کتاب و تقلید از مضمون و محتوای این کتاب لازم من از صاحب کتاب ازم گرفته باشن؟ صاحب کتاب در اول کتابش نوشتهش باشد که بله شما بدون اجازه حق ندارید به دستورات این کتاب عمل بکنید؟ خیلی هم می نویسن. در اول کتابشون هست چنین چیزی؟ آیا این حق هست برای صاحب کتاب که استفاده از این کتاب را؟ نقل و این کتاب را و چاپ این کتاب را مختص به خودش بکنن و بگه دیگری حق نداره از این منافع استفاده کنه یا نه چنین حقی نداره اونهایی که مخالفم میگویم که اگر مردم کتابی رو خریدن یک محصول فکری رو به دست آوردن اونش هم پرداخت کردن نه دیگه اینا حق تصرف در این کتاب رو دارن هر نوع تصرفی که میخواد باشه که چاپ و نشر باشه چه نقل و باشه چه عمل کردن به دستورات این کتاب به ازن کسی هم لازم نیست چرا؟ چون قاعده سلطه میگوید هر کسی مالک مالی شد مالک انواع تصرف در او هم میشود طبق قاعده سلطه این آقای کتاب خریده اختیار با خودشه که هر نوع تصرفی بخواد بکند و هر نوع استفادهی و منفعتی که لازمه از این کتاب ببرد اگر ما بگیم مالکیت فکری داریم و حقوق مالکیت فکری معتبر است این مخالفت داره با قاعده سلطه که میگه هر کسی که مالک هر چیزی شد و به دست آورد مالک انواع تصرفاته لذا چون با قاعده سلطه ناسازگاره است، هست معلوم شود که ما چیزی به نام مالکیت فکری در شریعت اسلام نداریم. مرحوم امام رضوان الله علیه یکی از این افراد هستند که با مالکیت فکری کاملا مخالفند و میگن نشر علم، فکر، اختراع علم و ایجاد مسائل علمی و مسائل فکری اینها مخالف قاعده سلطه است و اینکه پشت کتاب ها می حق طبع برای نویسنده محفوظ است یا حق طبع برای ناشر محفوظ است اینها حق شرعی نیست و التزام به اینها دلیلی ندارن و رضا ایشون می‌فهموند این جمله‌هایی که اول کتاب مینویسند هیچ اثر شرعی نیست این موجب حق برای صاحب کتاب نمی‌شود رضا دیگران کعق دارن برن چاپ کنن، تعلیق کنن، عمل کنن و هر استفاده را که می‌خواهند بکنن کسانی هم که بر این مفتب امام در تحریر وسیله الوسیله زدن و آمده اند و توضیح و تفسیر دادن کلام امام رو اونام همینطور وقت نظر امام باز میکنن گرد بله ما تو اقلا چنین چیزی نداریم به صرف اینکه کسی کتابی رو به وجود آور ایجاد کرد حقی براش برای او حالی برای ناشر ایجاد بشود اقلا لاعقل توافقی ندارن ولی اگرم بعضی قبول داشته باشند، همه قبول ندارند. نه طبیعت مردم اینه که هر چیز رو به دست میارن میرن از او استفاده میکنن و ازش تقلیب میکنن مدلسازی سازی میکنن توسعش میدن و انواع تصرفات رو میکنن نمونه برداری ها همینه و اضافه کردن ها کم کردن ها در صنایه هم همینه و در افکار هم همینطورت فرق سیره و اغرا چنین چیزی رو قبول نمیکنند. چند استفتاها هم از مرموم امام کردن نسبت به خصوص همین مسئله که در اون استفتاعت که سوال شده بود که بعضی کتب را نگم منحصر به خود ماست و دیگران حق ندارن این کار را بکنن چاپ و نشر و الاخر بکنن مخصوص مترجم و معلف و یا مثلا ناشه را اینهاست چون فرمان چنین حقی در شریعت مقدس ثابت نیست ولذا از نظر قانونی هم گفتن جرمه اگر کسی جلو مردم رو بگیره که چرا شما رفتی و چاپ کردی کتاب مرا نشر دادی کتاب مرا نه چون چنین حقی ندارد لذا جلوگیری هم نمیتواند بکنه و اگر جلوگیری بکند جرم است در زمان خود مرحوم امام وزیر فرهنگ و هنر اون زمان چند سوال روی پنج تا سوال از امام کردن در همین رابطه امام در هر پنجتاش تقریبا جوابهای واحدی دارند که طب و نشر کتب مذبوره موقوف و ازر کسی نیست احترام دیگران به طب و نشر همون کتاب موقوف به اجازه ناشر اولی نیست یا ازن معلف شرط نیست و خرید و فروش آن اشکالی ندارد. یا ازن ناشر شرط نیست. حتی اونجایی که کسی میخواد اقتباس بکنه، اخذ بکنه، مطلب رو از کتاب دیگری در سخنرانیش در کتاب خودش، فرامان اشکالی ندارد. ذکر منبع لازم نیست. ولی نباید به صورتی باشد که مستلزم کس در اصناد شود. بله به اسم خودش درد نکنه الان آنه نکنه مالو خودمه جوری نشون نده که خیال کردن مردم خود این کارو کردی فقط مشکل این دارد که مصداق کذب میشود و کذب موخ بارنا. از این بابرانه به صرف استفاده از کتاب دیگران بهرهبرداری و به کارگیری کلمات دیگران و نقل قول از اونها ازن صاحب کتاب رو لازم ندارد از آن امام صریحا نفی میکردن و هر کسی میتواند هر کتابی را چاپ و منتشر کند و اشکالی ندارد خب در این رابطه اونچه که از کلام مرحوم امام استفاده میشود که در تکمیل بحث ما مؤثر است این است که اگر نظر امام رو کاملا بخوایم بسط و توضیح بدهیم ایشون اینطور قائلاند که چرا ما مالکیت فکری را قبول نداریم و چیزی به نام مالکیت معنوی اصلا در شریعت نداریم ایشون چند چهار دلیل میآورند یکیش همین قاعده سلطه است مخالف قاعده سلطه است این مزاحمت با حق مردم است که مردم سیطره بر نصر و ما نشان دارند. پس بنابراین نمیشود گفت که آقای مالک صاحب ما حقی دارد اگه این حق داشته باشه مخالفت با قاعده سلطه پیش می آید ندیده گرفتن قانون سلطه را به دنبال دارد در حال که قانون سلطه قانونی ثابت و مورد قبول ثانیه اشون می که دلیلی بر ثبوت حق از جانب شاره نداریم ما دلیلی نداریم که در این موارد کسی که اختراع فکری دارد او حق دارد نسبت به انحصار به اختصاص این کار فکری برای خودش ولی طرف میتونه کتاب چاپ نکنه اگرم کتاب چاپ کرد میتونه پیش خودش باشه اما کتابشو فروخته به دیگران در این حال میگه از نمیدن ازش استفاده کنیم نقل و انتقال چاب استفاده از مطالب این کتاب رو من از نمیدهم نه ما دلیل شرعی ما بر این معنا نداریم دلیل استفاده این است که این مسئله از مرتکزات و قلا هم حساب نمیشود تا بگیم شاره خوب سکوت کرده از سکوت شاره امزا اشاره را به دست بیاوریم این همین عدم ردع و عدم من اشاره. دلیل برای این است که فرمون اشاره این معتقض اغلا را قبول دارد دیگر نه اغلا چنین ارتکازی ندارند. من شکنم که همه مختلف جواب می دارن من حق دارد صاحب که تا بعضی ندارد علامه شما همینی که الان تو بازار ما و عرف ما و حوزه های ما و مراکز علم ما اختلاف نظر برداشت ها مختلفه و سیره عملی اینطور نیست که اگر کسی آمد چیزی را چاپ کرد حق داشته باشه جلوی استفادهشو از دیگران بگیرد نه شما وقتی چیزو خلوک یعنی از حیطه اختیارات شما دیگه خارج شد بعد از خلوک و هیچ رو حق تصرفی نداری در حقیقت این کتاب دیگه ملک صاحب کتاب حساب نمیشود لذا همه مردم بر حسب فطرت خودشون تو همه اشیا میان اعمال تصرف میکنند هر نوع تصرفی حالا تقلید یکی اختباس یکی انتشار و نشی یکی در همه صنایع و حرف همین است تو چاپ کتاب هم سیر و همینطور است. و لذا اشکالی ندارد که کسی کتابی بخره هر تصرفی بکند نکه شهارونی که به عنوان تکمیل برای اتمام نظر مرحوم امام میشود بیان کرد این است که بین صاحب کتاب و اون کسانی که خریدار و مشتری این کتاب هستند قرار دادی عقدی و شرطی منعقد عقد نشده است تا بگیم ادله امات اوفول بالعهود بگیم شما باید به این شرط و به این عهد باید عمل بکنیم نه این حق طب محفوظ است برای نویسنده یا ناشر که اول کتاب ها می نیسن. این حقی و کسی ایجاد نمی چون عقدی نیست، قراردادی نیست. اینها مصداق عقد و شرط حساب نمی شود. که بگید شمایی که کتاب را خریدی به مجرد خریدن با طرف مقابل یه قراردادی و تعهدی را دادی که بدون اجازه او مثلا چاپ نکنید کتاب را. یا از مطالبش اقتباس نکنید. نه. بینید شما صاحب کتاب چون عقدی بسته نشدید. صاحب کتاب چه رو با مشتری و قرار نکرده است لذا اگر ما بنا باشه مالکیت فکری و معنوی را بپذیریم در حقیقت باید بگیم بعد از فروشم هنوز این مال جزء مال همون صاحب کتاب و صاحب فکر هنوز در ملک او واقع شده و مال مال او حساب می شود در نتیجه تصرف در این جایز نیست مگر با اجازه همین صاحب کتاب در حالی که این خلاف قاعده اغلاست، بنای اغلاست، ارتکاز اغلا و همچنین این خلاف قاعده سلطه است زیرا با فروختن انواع سلطه هایی که یک نفر بر مال دارد میتونه بر اونشه اعمال کنه از جمله همین نشر و انتشار و اقتباس و تقلید و عمل کردن و الى آخر خوب، این دلیل اول کسانی که مخالفن و میگن جایز نیست چون قاعده سلطه را از بین میبرند. اونی که به عنوان تحقیق در این جلسه از دوستان میخوایم که این دنبالش برن و حتی همیستان جلسه قبل در رابطه با حق ملک مال و حکم تحقیق بیشتری بکنن و در رابطه با این واژه‌ها ها تعریف های دقیق و عدق رو بیابند در این هفته ما تحقیقی که میدیم اش این است که در رابطه با قاعده سلطه بحث بشود آیا این روایت الناس و سلطان علا قابل اعتبار هست یا نه الا چه تم مبنایی که شهرت عملیه رو جاور ضعف سند بدانند چه اونهایی که ندانند و ثانا آیا قائده سلطه که بعضا به میگن تسلید منبعش فقط همین روایته یا نه مستندات دیگری هم دارد این دو و سوم سلطه معناش چیست؟ به طور واضح و دقیق اینکه میگیم مال و فروح این طرف سلطه دارد این سلطه به حسب لغت و به حسب عرف چه معانی را افاده میکند چه نوع تصرفات و چه نوع اراده مال اراده مالک بر مال خودش را تجویز میکند تا بهش این سلطه دارد محدوده سلطه باید کاملا مشخص بشود و لذا تا قاعده سلطه دقیقا بررسی نشه و حدود و سغورش مشخص نشود ما نمیتونیم نسبت به این دلیل اول بریم تحلیل انجام بدیم البته یکی از ادله از اتفاق کسانی که قائلا به اینکه ما مالکیت فکری و معنوی داریم همین قاعده سلطه است اونوی از این قاعده استفاده کردن به نفع مالکیت فکری و معنوی که اونجا باید جواب رو داد وقتی این قاعده کاملا مشخص بشه چیه و در پاسخ بالاخره بگیم آیا قاعده سلطه هم صاحب اثر را شامل می شود و هم کسی که مشتری یا فقط یکی از این دو طرف را و بالاخره قاعده سلطه آیا اثبات میکند مالکیت فکری را یا نفع می‌کند یا هیچ کدوم نیست ازا تحقیق پیرامون قاعده سلطه به عنوان یک بحث تحقیقی این جلسه به دوستان گذاشته میشه تا جلسه بعد در هنگامی که این قاعده بناس نقد قرار بگیره مفصل پیرامون اون صحبت بکنیم در خیمت دوستان هستیم اگر سوال و نقطه‌ای داشته باشند. قصد درخ در رابطه با این بحث قاعده سلطه من یک مثال برات میذارم فرزن من به شما این ماشین رو میفروشم به شرط اون که شما مثلا در شهر قم ازش استفاده نکنید این شرط من صحیح است یا خیلی؟ بله در بین می شود انسان تغییر بکند تصرف را و محدودیت ایجاد کنه اما اصل سلطه رو نقد بکنه نه این جایز نیست خب در انجام اصل سخته که نفی نشده که بلکه محدود شده بعضی از حضرات ائمه که ذهنم است خصوصا از که یه مدر قبل از امام Khomeini بودند و یه خود معاصرتر بودند این دو نکته قرار داده بودند گفته بودم که شمایی که نفر اول هستید با زمانی که کسی خلاف نکرده باشه این عنوان شرط زمینی برای شما قبوله یعنی اگر یک نفر مابین این قضیه اومد و گفتش که آقا من این شرط رو انجام نمیدم و خودش رو که کپی کردن در دست مردم، این فرق گناهکار و کار حرام انجام داده با بعدی ها چه دیگه برشون قرار داده نشده اونها شرط زمینی که اونها برایشون حلاله ولی این نفر اولی که خلاف کرده مهندسه معکوس کرده یا عمدن اومده این کارو انجام داده، اینو میگن که کارش حرام بوده بله در رابطه با خود قاعده سلطه و همینطور در رابطه با بی و غیر بی از عقود دیگر که آیا می شود نحوه تصرف و مقدار تصرف را مقاید کرد یا نه این هم خودشی است که در فقه هم مفسر به فروعات زیادی در این زمینه رسیده شده که می شود این کار رو کرد اما این نظر مرحوم امام رو که میفرمادی یا بعض از فوقه دیگر این بستگی داره که آیا این جمعه حق تبع محفوظه است یا در رابطه با نرم افسار الان هم همینطور دیگه که این به مسابقه کتاب حساب میشن اینا میگن آقا کپیراتش جایز نیست و تکثیر شدن فلانش جایز نیست آیا اون کسی که میآید و میگوید این کار رو جایزی بکنی عقدی بسته و شرط ضمن عقد است من این سیدی رو به شما میخوشم شرطش هم این است. های صرف چاپه و نوشتن این جملات روی یه نوار روی کتاب شرط زنعق حساب میشود یا بله یه موقع سریحن طرف میده این کتاب میفوشم شرطش این که من معلیف یا من ناشیر پایین نوشتم اینجوری نباید تصرف کن تو این محدوده فقط همین مقدار نه همه تصرفات آیا اینا شرط اگر تصریح شده باشد در زنعق عبی ندارد اما یه صرف نوشتن چنین جمله هایی این شرط ضمن عقد حساب میشه و یا نه صدق شرطیتش همینطور یا میگم اصلا عقد جداگانه است من خود نوار رو به تو میفروشم که سخت افزارش ملکی تو باشد این عیبی ندارم مال شما اما نسبت به نوار افزار یه عقد دیگه میخوام با تو برقرار کنم آقا من اختیار استفاده این رو به شما میدم در مقابل اینقدر قیمت مثلا این نوار قیمتش ارزونه که شما فلان استفاده خاص را نکنی اگر تصریح به این معنا کنه خب بله میشه عقد اما صرف نوشتن کنار کتاب یه چیزی رو نوشتن این عقد مستقل حساب میشود که اینو باید بحث بحثای بعدی میادی رو بحث بکنه که آیا عقد املا یا نه شرط زمنه همون عقد اولی حساب میشود املا اینو باید حالا بررسی کنیم که آیا کدوم که از این دوتا هست خود خودتون نظرتون چیه استیله این بحث خدمت شما انار کوسالشون علاموانه شما میگید قاعده است یا حدیث رو قبول داریم. حالا علی از اول بخویم فتوا بدیم بعد وارد بحث بشیم درست نمیشه تو قیاس معلومه میگن اول سورا رو بشین بعد کو رو بعد ببین نتیجه چی میشه هر چی که شد ما حالا اون نظر خاصی داشته باشیم اما از همون اول نمیشه باقا نظر امین است باید ادله رو دقیق بررسی بکنیم دوستان اگر مطالبی دارن از جاهای مختلف میارن و استفاده میکنن ما هم گوش کنیم استفاده کنیم چه بسای تو این بحثای شاید نظرم عوض بشه شاید هم نشود و ما تحکیب کنیم بر همون نظر که یافتیم اما فعلا چه باید کرد؟ فعلا در حال تحقیقیم کسی که در حال تحقیق نباید فتوا بده فتوا مال از تحقیقیم تشکر اصلا یادکمون داریشان استاد ببخشید اگه اجازه دو سرمایی من یه سوالی داشتم خدمت شما خدمت شما خواهش می‌کنم یه مسئله‌ای که الان جلسه قبل من خودم واش تایید بودم و دنبال این بودم که بهش برسم اینکه ما هنوز به یه تعریف واحدی در خصوص مالکیت فکری نرسیدیم اینو برای